کمار کردنی دلیر سلین گگرانی عزیز و خوشوی صلافتان لیبه خوشحالین لبشی حفظه می خویند نوی کتیبی چشتی می جوری هجاری مکریانی حتی نویلاتان فرمون لگلمان بن. هجاری مکریانی بردام او بیر لسر یرانوی سرگوزشتی جیانی خوی. لو کاتی که لیرانو براو عراق برکوتو لیوه دا گیشت شر سلمانی ری دکیوه تا مالی میرزایگ. میرزایگ که چندین در دستری اخو ازاری چشتوه بلام دو جار بوته میرزاو خلکی دست دست رو دکنه مالکی. بسرحاتی خوی لگل او میرزا دا گیراتوا. نداله ارانی کبه قشق ده بس نه میرزا در کو دیوانی بودا کردن پاسپورت بو سازه کردن لبیر مروج میرزا ل دوکنه بوین کبره یک حد و کسک بو تاسر کو سید بو اما سید بازاروی مریوانی وتی سلام میرزا الرحمان کامه هی جوتی ها کاکا چدوی کبره جلک سازه کوتی دچمه حج وتیان به ملایتو میرزا وتی با شکاکا تو عکس خود بینه بالکو کالی کتبوبکم کابرا پیوت میرزا ناب محترم کی من ام شاو دبی بسم بغدا سید وتی سید لا چخت لا ده مال يرن استا کرک بد بین قپارد لیدا و دزانی باروینجی کور اگر با 20 روش بوت جی بجکم د بشکری خو کی ارمنی کی ارق فروج جره بشر مو لبن لیوانو وتی ما میرزا تو دلین پیوی کی ل پر دین اسلام حقو دینی گاوران بتاله که چیه میگوره که نشر دکن نجحلگرین ندزیو شتید کن، او کارانه همویلا مسلمانان رو چون وعده. نزاد چه کس کرد و توی کسپر هر نهک دست کود لاتی خیر مسیح کبه سلطی اگر مسیح نیه نباوسیه چهار جاش کری با جهیش دبا، استحز ارخوزگتان با مسلمانان دخواست. هتیو چه کاری خراب دکار؟ دبروانه همویان اولاد رسول کارنو سیدی برزنجن. کام کرمانس خراپ دکا، جاریک ملا شیخ نوری نوی زگزلی بجیره یریه پرسیاری لیا کرد. ماموستا، شیخ نوری چونه؟ خوایت تبارکو تعالی درباره جن عدالتی بخرز ندهو. جگر لوی کلشایتی و میرادا دو جن با پیویکا، دلن پیوی بهشتی حفته حوریدنیو جنکه سر دنیاش ددنهو. دا واتا اگر جنکی زور خدا پرستی وک رابعی عدوی که به اولیا حسابه، لپاش مردن بچته بهشت حفته زور جوانی جوانیه کله سه‌ دنیا د گل نده حواوا د هواوه ملاغوتی جل زور کی فیانسازه سازه ام پنیر لذیذه بهشت د خون خمچیانه او شوتی وا تمام مستی برز من کشوا که هر بو پنیر خول مالش پنیر هه لمه و باس بهشت و جهنم دامزرا شیخ نوری وتی بو قرآنی لس رانی راست مندانه و شته رنگ اگر بیارموا وان شو چان بله بفرمو کی بروانکه شیخ نورالدین سنسی چوار سندی خستی خوردی وتی لګوند سیتاک شوی چوبو مسر دیتم زنجیره کی اگرین هر وشې دهت لا اسمانه ود ده یلرا زلامی بقد اجدها معره د زیران که شاو برو جور یان برد طالبر چاو مون بو سیرم دکړت دیا بر دیانه ویزه جهنم یاکان ما میرزا ګوتی باور پې تو درو ناکې الان پیم بله جهنم لکیو بهشت لکیوه یا؟ اویش ویتی، میرزا، تو خود دیزانی که بهشت لجوری آسمانانو جهنم لجر حوط طبقه زوی دایا؟ میرزا ویتی، دسا ما مستاجین با قرآنی تو سویندت پیخوان، او ماریان بردوتا بهشت با یعنی بهشت یکن، اگر با جهندم با دبوای عرضی با حل کولنو کونی کنو مارکه تیخن، بخوا ما میرزا، قصه که جگه فکر لکر نویه؟ سید علی بسم الله نایک هبو بزن جی تا خواهست کن نشرین و خرنتاو زمان پیسو شنفلوچ بو روز یک میرزالی پرسی دو اشکال هيا بوم حلقه دلیل اگر مزجات رو خواه محرابی ماه دلیل پیغمبر زور جوان بو تو کیت وقت او با پیر دشی دو هم دلیل مسلمان چوارصد ملیون ایا بتو حساب کرایا یان ن بتور چوارصد میلیون دانه یکن دیار جوابی سید علی هزار جنوی سر با کلک بو تاریخ سیاست ادابیاتی کوردیو فارسیو عربی دا بحریق بو بیبن. هر خوش بو او قصب کال جویلی بگری. براستی و کابره ما زور گوره بو منو زورشتی لفیر بوم. مرزال نوروز دا بردمی بغدا. روژه و اترسم اللمال من بد گرن. دسالاتم نیارزگارد کمو آفروم دا چه. با بد کما پنابری شغلطیفو واش ناکم بزانی طول لامی. تان زانم قبولد دکا. پاش تاریخ شغلتیف بتنیه بتورمبله کوهاتو بردمه مالخوی با اوش بلم وگدلین ناوی گوراو شاریوین من یگوانزان دنیا ندیتو ناوکم مخ شاعری شورشی کورد و پیشخون کتبو د روبر د ناسم شیوک میرزا پرسی توجح یلی شیخ نجم الدین کایا دله اول فقیم بو کوزر پیره تو د ناسی بخوا وتی باشا گالتیک دک سبیشو شیخو چن برادر کی بانکردبو کدیان پرسی اماچیا دایгот سوفی کی من ریشو پرچم پتا شیوا دنا قسانده شیخ نجم پرسی هجار اولت لچویا او جوتی دلن لی بیاری بیا آی چن بو با تاسوم دست کربه حکایات گرمی خو یومن ک سال پکو من خویندو میرزاوتی سوین بخو نکی شیخ قطبو تماشا کی نکه آواح او بیه، با خوانم دیو، بلام خوشم دیه. شغلاتی فیش هر بنا و کم خوشیده بیستم. لمالی او دامزرم. لرشو و چند کسی که رفیق چالق، محمود احمدی معلمو، زور کسی دیم بون آشنه. چهام به برام احمد کود که ایش اندامی کمالبو. شغلاتی لیپرسیم، برام چندید. وتم پیرویی زرنگو زنایو زوریش کرده با شرطی خوب کنسلوکی کردستن. کاتی ملا مستافا لساب همزه عبدالله نویکی راس برده و کحزبی با, با کرد لاق دامز رینو کاغذی دبود. شبه گویان مامستادید. همزه عبدالله پیدا بود. پیروی کی زور لود برزی قهر دماغم هات برچو گرای وکلا سابلاق وک پیوسته قدرینجی راو قصیوای کرد که هر شلّتیک پیشر در درباره دولتانی امریکا و راجا و هیچ جگهای نگرانی نین کارگران لجاتی بارود خود دکتر نوبون بکانو سرکاتن هر و دولتی سوفیاتی جره قسمه مستر زرب احتبارو کس ناکری بلیوانیا هرچی دم دیو دو پیتولته کې خندمو کومونیستي دوه اتشه بو سره دن قسیان صلاوت لا دیداری استالین بو من که هیڅ هم د باران دا نه بو هرگیز لا کومونیستي شت نه گیبول جره غوستم ګلابکم کورس ایمایان بجهشتو شرطیا نه برد سر زرب توندی بګژن د هټ نو به هزار و یک دلیل حاليان کړدم کوروسیه لمصلحتي کور دو کاري کړ امریکا دیویست یاریده ایران بکاو کردستانیان ویرانده کرد. روز با امانت خوی که شاوتاو. روزی که ندور دیتاو آزاد منده که. لینین وی فرموه. ستالین وادالیو جدانوف اقید ایوای. هر گیر جان کردم. با باوانه زورده زن. اتر او جرمنیش ازرم با روسیادیناو دا میویست او خوال کردستان بیخوان کردنی بسط برده پی نبکم. تا نلن رج لبیرما یک لا دلیله باشکان او ابو مسله کوردی ایرانو هرایونا نهبو چینی 600 ملیون شهبو روسیا بو او چین کا تهاولی خو یو طاقت او هم مواجبه نبو چونکه لشر آلمان زور زیاندار او لازم بو, بو دستی لقازی او مارکوس هالغرتو چینی بردا دو دسر سوتا او قیصریه چی و جیرکاو پیاو قیصریه به دسر پیدا دکاته روسو چین امریکا دخنچین نو اهمیت لچین ایران و ترک در کی بی او قصه شی و بردل نکوه؟ بلان کی ستالین دزانی ها؟ راز دکن لشعر یکم ده لتوریز گوتبوم ستالین دزانی هست چیه حال من؟ که که منش ستالین گوتویه یمن پرسیسکی کردیسکی خرشوی اما اما معنی قصه خوما ندزانی اوانه زنانو در زنان دلن چی؟ خلاصه منی اواره مال ویران کلودی کلولی روسان روسانی ایران خواه خوان بو با رجعیم زنانو با کومونیستم لقلمدنو لگل حالم نویرن بوش وی نوانی نردرامه گوندیگ بناوی بی بی جک مال محمود بگناوی کپیاوی شغلتی و زوری نبرد عبدالقادر احمد و باقی بامرنی هات نوی و یفترمن ناسیه باقی نوی مبغفور و عبدالقادر کاخدر بو تانه ناس ملاه لشنو از نردبونی عراق، نامه از این کسی هنه بود، و از این از این ملاه مصطفى، تا پرسی پیانکی نتوانی بدبین نامون نامه با بارزانی نوسی، نامه با مال خمان نوسی که حق و حساب قرز و قولان برون کردنه مام غفور هاته و خبری ده، که کاخدر لدول شنو بفراجی ری کرده و برسانکوتو و خویدوات دست دولتو بلوتران مله مستفاج روی کلوت و لات روس و لونا و نماوا، آیج لنا شریه توت عراق، جابی ملا و شیبو هناب و ماوا، کاک الرحمان گوتبوی، دمان شکه ایوان لساندم، قسم غا کنوسیبوم سیصد و پنجتمنی لایا تورابو، حدیچیا قرض لایمن بی، ملا عولاق گوتبوی سه هزار تمنیلایا سوندهخم، دیار بو پیاو هر چی بی تقلب چه و نلبرد لانا، تنیابراه کل بو. لجنگی سربازو عشر، رجانه نو شرده در جنگه سربازو عشر رجان نوشهر ده مالو مندالکه می بردبو و شیلانویو لخطر پرست بونی کردیان بردبو بو که دوی اما آغایان کوردیان بردبونه تاران، شاپرسی بوی او هجارکه چی لی حاجی با ایز آغا قربن، اما کشت من دوی حالات نکم لبوکن اول آغای محمود آغا جنوی با کیو خاکی دابو که دلی قرانی فیشک اکتر نهات هجار بکوشن از سلیمانی در تاریکی دیو خانده دیم، کسی کنید. کمم غفور ها تو بو با او دنجیم، روش دیگه درگاه کرده و اسمان دانیش که سابلاغ و درسی کردی به من دالانده و جورکوت که اویش تازه گره بوا پیمود که عثمان مندونه بی و تی افوب کن من نو عثمان نیم ها من ایو دناسم تو باقی تو هجاری باقی گو آخر اسمن گاموش منګه یک ترکمن نه دیوا بورت دمان و دماناسوی امانات ناسین روزه گلتم ک ابرای کیمل پانی پالتو کی برګینه وشتری 80 یانه لبر داو کی پان کوشش کی پاش پانی دریجی قطرچانه پیدا حته جور پښ تاک نسیم حسن قزلی او ماوی ک لبیره صوفی بو استه پک شکر بوین نو به نو کاک حمزه کو مو ملا اولای حساریش بونا پنابر کارش که ترس لباعه نی کشیده بسره کدات گود زردش وای پیدا رجواه حتلاش شخ کاری شیب کا حجی علی دناصی لبکان ارزیابی توتن بو چنکی شوخی خلفه هبو زود دولا مندو و مالن چوب و ساقز منیجوتم حجیان تویرشی ایجوتی آی قرآن حقات من دوره خانم توی هوالشام و آخرشم یا مک حشرمن لشام اکریا بوی سنشین که شماله که من فروشت فرشت مانهش ته بار من کردو چوینه قصر شیرین خال یکان منده وقا چاخچی که خوش منو فرشکانی برنه اودیو قرار دریا ساعت 12 نیمه شو بیان بینم قوروان خود ته زانی مسلمان چیه د 12 د 12م چو مسر کولان هاوارم کرد عبدالقادر. توماس کاوری کی پولیس شو ناوی عبدالقادره. القادر بغرحاتو منی دیته کلمچي کرد د دست موا و هزار نار علی وسط منبریدم بی ادب له خدمت قال یکان خل خانقین گیران گومیکان لساندین گین بغداد وتملای عبدالقادر یاند ابزم فرشو خانمو من لبند دیوار غوس لپنا جاده ماینوا لزو ان کستینه د گئیشتین ای واره وخته کاور یک وکوردی وتی ای وشینو بولیرن کته گئیشت بانک حمل کړد او قال ی مال خو ی وتی ای ولله و قاشاق هاتګن پولیس بزانی اتنګری پاسپورت سوریه ته نیه اش شناشم گشت د زبرو من ناجم او ایوت حش چو مشی چ توابه استغفر الله ل سرقسی او ګرای نو سلیمانی استه هاتګ ملای شیخ فکری ابکاته چبک او بین زربتاسبم شیخ محمود ببینم بلان تا دوام وکړ شیخ لطیف بهنه چی ادوزی او شیخ لطیف خوی شاعر بو, بو. بلهم باور نکم شعری کسی خواد بیا تنانت و تنانات او کا غزنلی قوموان بواند نو سی قط یک نه و بندوشکی شکی بنقونی ددار کلا بی بی بوم سوار بغار هاتو نامی شیخ لطیف دامه کزورم تعریفی تو لای شیخ محمود کردو پی خوش نمونه شعر دیدینه تکا شعر بون سببوی شوینموا من کدم زانی حالی چونه کاغز سپیم خسته نا پاکه نردم کا لطیف ها شعرکم چون بو؟ فرموی زور خوش بو. شیخ محمودیش زوری پسند کرد. برای برین او روز قزلجی و مامغفورو منو همزه چونه گوندی سیتک. لجوری که دیان کردین. لیکی چپر اکی شق و شر کدید من تاجیق لیوخوی کرد بجوره. دنیا تره و قره بو. خو من حل کرد. با قره حوشه چپر من بر کرد. داری تره سوپ من ببره و حل چنی. رایخ من لیباد و, و کرد. پیتل دنا تو اول دسته پر دو روز میر زرحمان یک باری کته کی بناردین کو ورز نبین کتیبی چون هر له تالیفات مرکز او تا خباتی منی هیتلر له شرع و شرعوا تا ترجمه کتیبی به شرمانی بازاری سندونی له شرع و شرعوا تا ترجمه کتیبی به شرمانی بازاری سندونی پاریسی تا کرامتی شخص احمدین خلاصه اوندی دجله کو کرد بو وا باسی نکری رو منو حمزه باد فنگی کی تا پر شیخ و د و راو سوسکو کوترو کومن راو د کړ قزلجی له مال وختې و د خوین شو حاصل راو من دخوار دو جمن لقزلجی قزلجی که کوک حکایت خوانی ل زبر چیخ وین بو و د جرايوه قزلجی له اولای پرسی اگر کاریک یک زور اشتیر به وینجی تر ريبوبر نه جاو پرسیاری دیوه قزلجی او لمكتب دادله شه حساب الدين چوبو باغي کري لوي بسرا بو فرمي او کري دله برسيما و انجان بو برت خوردي ملا الله او تي چه سبب دګنوسي وي قزله جوتي خليفه محمود ملا الله او تي جنو به خليفه نادم بل عمق سي شي بيتاما روجک دګل حمزه لسرګرد کوه براز یک مملقه مشلان یکدا بدي کرد تا پر من پي بو اوتم با بوپچين اي جوتي براس نخير د کوجی پښ مقام مقوی چې زور پېکا تین حمزه بقری و هراو من بتا پر ریسک من کړو په من برد کچی براز به کولکسو تارک درشو روزه کده څوین راو لسربانی مزګو تراو چیک من د کړو کچی براز به کولکسو تارک درشو روزه کده څوین راو لسربانی مزګو تراو چیک من د کړو ګمانه خلک ګوندګر خو خه عقل من دی دیابو چکدار عثمانی کرده بو، لشهر بس رابش دار بو بو، ری با نونده گود، بس شهر دایی راوه که بس سر سلطان عبد الحمید خو غنیقی نحمتت بکا، تو اگن بغداد هبو بس ناد بو چه بو، او همو گنجد بسونگی سنگی تاق بکشتنده، جارک قاوده کود خلیفه شیخ حسان قراشوانی بر رویه، لای ویالدر رویه برو پیری هاتوا، درویش خریک بون بایبسن بگرن، ریوی او خلیفه خلیفې ماچ کردو او سری په دا ساوی و خلیفہ دستی بسری ده نهو فرمویا او کرد می با خلیفې ریوی امناوه تو تو بیان دادو برلای کردو بوبقری و ایلوفیاو مبارکه ای خوږه به ریوی بهشتیا زغرم ده ته بونو کوه خو توفیق لګشتان زیاتر حاجی قادری کوی دله صوفی وک تش نه بو ل همو دینی دادا د بکاسه او شیع وقت تش نه لا سین زدان بدو قطری دده حسین او حسن خلک سیتاک هم بجی سالین نس در فروشنو راوروی بو لته نشتم مامکی خوا دانشتم وتی خبر چی وتم چون تو باس خلیفو خلیف روی نابسی بخو ابي خما احساس کن خدمت کی باشم خلیفو درو شانب کین خلک سیتاک هم بجی سالین نس در فروشنو راوروی بو لته نشتم وتم خبر چی اوی جوتی شون تو باسی خلفا و خلفار رئی نبیسی، با خواه بی خواه من ساز کن خدمتی کی باشهم خلفا داری و شن بکن، و تم که خا جن تا است خلفار رئی همه رئی کنی شرباجری کل وته داریش، با خواه چی رئی بکو جای چت جحمدم، را و رئی دسالگریم، که خا تاسهی برده و کل کر هی بکن بکن با و خلفا، خونع بر را و رئی بکن، دیس ان غلبه غرب دامز با بکامل دوای خوندن، بولای شغلاتیف که آسای لسی تجبو، وتم یا شخ خود دزانی امشربار جرای پوانی طریقتی که احمدی شخ خلیفه گرمانی حقیتشیه عاش سوق بفرانم و میرید لعی و داجیر کا شخ گرمده هد دادی سوار سوار بن، ام با وحی زبرو شارزو بر آتینن ملا شخ نویکا باسی کرآ تی تولش حالا که سیدانا به دوری ورگی ده نبو دادگود کمبلی دوري ده ولع لاهی کرد سردری رجو لچور هر مشیده هات شونیکی زول بارو و بنازو نوزی ما را بجاش لخو ما را کردبو طلاق نه دابو ووا جن شارستانو خوندوارو توشی ببو بو, بو علامتو لو جیانی سی تک دجیا خوا خو خوای بو ملایتو رکا او طلاق بدره خلکی دکدی انګود بلخو سوکا ملاد فرمو قبان ام جنې منا خوان گواری قران له سینګیا چونکه ملابو چی نشانه میبینه عربی دخست کردیش روش یک زور باش پر گوتی ملا محمد ملاجن نخوش و توی دوی کدر ما وتم و تم ما مستامن حکیم نیم ایجووتی بخوا علی عبی حربی ملاجن لسر جگه کوتی بو سنگ بر الله دستی گرتمو لسر ممشی دانا زانیم داو بومنی ناوتاو حت مو دو بنیشتی روانیم بونار ملاجن لسایمن من ساق بوو ناوم لدیدا به حکیم زرا جاورو سوین بخوا ک حکیم نیم ای بوچی ملاجنش چاکر داد و سی تا خم ال کرد شیطان گویی چا أمريكي أن أعزيز لديه حتنا كتائي حب حفظة خن خوين نواي كتب 6 مجوري هجار مكورياني تاشيوه كترو لبشي تردابي تن دهجي نواي جيانتن پربت لشاده و بخته